Thank mm -hmm. you. از همان ابتدا اپیکور یکی از آن فیلسوفان باستان محبوب نیچه بود او اپیکور را تسکین دهنده روح اواخر دوران باستان یکی از بزرگترین انسانها خالق شیوه قهرمانی شبانی فلسف ورزی می نامید آنچه در نظر نیچه جذابیت خاصی داشت این ایده اپیکور بود که خوشبختی یعنی زندگی در جمع دوستان ولی نیچه با رضایت خاطر حاصل از اجتماع ناشنا بود. این تقدیر ماست که از لحاظ فکری گوشنشین باشیم و گاه و بیگاه با کسی گفتگو کنیم که از لحاظ فکری شبیه خودمان است. در سی سالگی شعری در وصف تنهایی سرود به نام هیمنوز آفدی اینزم کیت که دلش نیامد آن را تمام کند. همسریابی هم, هم کمتر تر دردناک نبود. مشکلی که تا حدی ناشی از ظاهر، سبیل های بزرگ قیرادی شبیه فیل دریایی و کمروی نیچه بود که رفتار خشک بیزرافت سرهنگی بازنشسته را در ذهن تدایی می کرد. در بهار 1876، در سفری به ژنو، عاشق دختر متلاعی چشم سبز 23 ساله ای به نام ماتیلد ترامپ داخ شد. گفتگوی گفتگویی درباره شعر هانری لانگفلو، نیچه گفت که هرگز با نسخه آلمانی شعر پوشال لانگفلو برخورد نکرده است. ماتیلده گفت که نسخه از آن را در خانه دارد و میتواند برایش رونویسی کند. نیچه که در و جرأت پیدا کرده بود، او را به روید دعوت کرد. ماتیلده صاحبخانه اشرا به عنوان همدم خود همراه برد. چند روز بعد، نیچه پیشنهاد کرد برای ماتیلده پیانو بنوازد. و بیدرنگ این استاد سی و یک ساله زبانشناسی کلاسی که دانشگاه بال از ماتیلده خواستگاری کرد. سرهنگ سرخوش پرسید، آیا فکر نمی کنی اگر با هم باشیم هر یک از ما و نیز پوشال بهتر و آزادتر از زمانی خواهیم بود که تنها بوده ایم؟ جرعت می کنی در تمام مسیرهای زندگی و تفکر با من همراه شوی؟ ماتیلده جرأت نکرد مجموع شکست های متوالی در امر خاستگاری به نیچه بسیار صدمه زد. با توجه به افسردگی و بیماری نیچه، ریشارد باگنر به این نتیجه رسید که دو درمان احتمالی وجود دارد. او باید ازدواج کند یا اوپرا بنویسد. ولی نیچه نمی توانست اوپرا بنویسد و ظاهرا حتی استعداد نداشت که ملودی خوبی بنویسد. در جویه 1872، دوئت پیانوی را که نوشته بود برای یک رهبر ارکستر به نام هانس فون بولا فرستاد و از او خواست که آن را صادقانه ارزیابی کند. فون بولا گفت آن دوئت شدیدترین گذافگوی، عصبانی کننده ترین و ناموسیقایی ترین مجموع نتهای کاغذ دست نویسی بوده که تا کنون دیدم. او نمی‌دانست آیا نیچه او را دست انداخته یا نه. شما موسیقی خود را هلناک اید. واقعا اید. است. اصرار واگنر شدیدتر شد. با آهنگ یک نواخت می گفت، تو را به خدا با زنی پول دار ازدواج کن. او با پزشک نیچه، اوتو تماس گرفت و هر دو حد زدم که بیماری نیچه حاصل خود شدید شدیده است. این تنز روزگار بود که تنها زن ثروتمندی که نیچه واقعا عاشقش بود زن خود واگنر کوزیما بود. نیچه سالها احساساتش نسبت به کوزیما را در لباس سمیمیت دوستانه مخفی سم فقط پس از زوال عقلش بود که واقعیت آشکار شد. نیچه یا مطابق امضای خودش دیونوسوس در کارت پستالی که در ابتدای جانویه 1889 از تورین برای کازیما فرستاد نوشت آریادنه نه، تو را دوست دارم. با وجود این، نیچه گاه و بیگاه با نظریه واگنر درباره اهمیت ازدواج موافق می شد. در نامهای به دوست متأهلش فرانس اووربک، چنین نوشت به لطف همسرت عوضای تو صد بار از من بهتر است شما با هم لانه و آشیانه ای دارید من در بهترین حالت یک قار دارم ملاقات گاه و بیگاه من با مردم شبیه نوعی تعطیلات و نوعی رهایی از خودم است در 1882 هشت دو یک بار دیگر امیدوار شد که زن مطلوبش را یافته لو آندریاس سالومه بزرگترین و دردناکترین عشقش. سالومه بیست و یک ساله، زیبا، باهوش، عشقگر و مجزوب فلسفه نیچه بود. نیچه در برابر سالومه بیدفع بود و به او گفت دیگر نمیخواهم تنها باشم بلکه میخواهم یاد بگیرم دوباره انسان باشم. اوه اینجا واقعا همه چیز برای یادگیری دارم. آنها دو هفته را با یکدیگر در جنگل تاتنبورگ گذراندند و در لوکرن همراه با دوست مشترک خود پلره عکسی عجیب گرفتند. ولی سالومه بیشتر به نیچه به خاطر فیلسوف بودنش علاقه من بود، نه اینکه بخواد او شوهرش باشد. جواب رد او نیچه را بار دیگر دچار افسردگی شدید و طولانی کرد. او به اووربک گفت، «اکنون به شدت بیاعتمادم. هر چیزی که میشنوم مرا به این فکر اندازد که مردم از من نفرت دارند.» نسبت به مادر و خواهرش احساس ناخوشایند خاصی داشت. خواهرش در رابطه او با سالومه مداخله کرده بود. با آنها قطع رابطه کرد که این امر بر تنهاییش افزود. مادرم را دوست ندارم و شنیدن صدای خواهرم برایم دردناک است. هر وقت با آنها هستم مریض میشوم مشکلات حرفی نیز وجود داشت. در دوران سلامت عقلی نیچه، هیچ یک از کتاب‌هایش بیش از 2000 نسخه فروش نرفته بود. اغلب چند صد تایی فروش رفته بودند. با مستمری معمولی و چند سهمی که از عمش به ارس برده بود، به زحمت می‌توانست لباس‌های جدیدی بخرد و به قول خودش شبیه بز کوهی شده بود. در هتل‌ها در ارزان‌ترین اتاق‌های اقامت می‌کرد و اغلب در پرداخت اجاره تأخیر داشت و نمی‌توانست پول گرم کردن اتاق یا ها و سوسیس های مورد علاقش را بپردازد سلامتش مشکلافرین بود از دوران مدرسه به بیماریهای زیادی مبتلا بود سردردها سوء حازمه تحوو و استفراغ، سرگیجه ضعف بسیار شدید بینایی و بیخوابی بسیاری از اینها نشانگان سیفیلیسی بودند که تقریبا به طور قطع در روسبی خانه کلونی در فوریه 1865 گرفته بود گرچه نیچه ادعا می‌کرد در آنجا به چیزی غیر از یک پیانو دست نزد است در نامه‌ای به مالویدافون مایزنبوگ سه سال پس از سفر به سورنتو نوشت از نظر رنج و عذاب و کف نفس زندگی من تی سالهای گذشته شبیه زندگی هر زاهدی در هر زمانی است.» و به پزشکش چنین گزارش داد. درد مداوم احساس نیمه فلج بودن حالتی شبیه دریازدگی که طی آن به سختی میتوانم صحبت کنم. این احساس روزی چند ساعت طول می کشد. به عنوان تغییر زائقه حمله های شدید سر، آخرین آنها مرا مجبور کرد سه روز و سه شب استفراغ کنم. آرزوی مرگ می کردم نمیتوانم بخوانم. فقط به ندرت می توانم بنویسم. نمی توانم با دوستانم معاشرت کنم. نمی توانم به موسیقی گوش کنم. سرانجام در ابتدای ژانویه 1889، نیچه در آلبرتو کارلو پیاتسای تورین از پا درآمد و اسبی را در آغوش گرفت. او را به خانه ی شبانه بردند. آنجا به فکر کشتن قیصر افتاد. جنگ علیه سامی ستیزان را برنامه ریزی کرد و اطمینان یافت که بسته به ساعت دیونوسوس، مسیح، خدا، ناپل پادشاه ایتالیا، بودا، اسکندر کبیر، سزار، ولتر، الکساندر هرتسن و ریشارد واگنر است. سپس او را به سرعت با قطار به تیمارستانی در آلمان فرستادند. در آنجا مادر پیر و خواهر نیچه تا هنگام مرگش، یازده سال بعد در پنجاه و پنج سالگی از او مراقبت کردند. بخش دوم ولی نیچه برغم تنهایی، مهجوریت، فقر و بیماری هولناکش رفتاری که مسیحیان را به آن متهم کرده بود از خود نشان نداد. علیه دوستی موضع نگرفت و به مقام ثروت یا رفاه حمله نکرد. آب گالیانی و گوته در نظر او قهرمان ماندند. گرچه ماتیلده خواستار چیزی بیش از مکالمه درباره شعر نبود ولی نیچه همچنان عقیده داشت که مطمئنترین درمان بیماری مردانی خودخوار شماری دوست داشته شدن از جانب زنی زرنگ است. گرچه بیمار و فاقد مهارت منتنی یا استندال در اسب سواری بود، به ایده زندگی فعال پایبند ماند. کتاب خواندن در صبح زود به هنگام پگاه در آن هوای تازه و در طلوع نیروهای انسان را بدسگالی میدانم. او به شدت مبارزه کرد تا خوشبخت شود ولی هرگاه شکست خورد مخالف چیزی نشد که زمانی به آن مشتاق بود او به چیزی متعهدمان که به نظرش مهمترین ویژگی انسان شریف بود اینکه کسی باشد که هرگز انکار نمی کند بخش 23 پس از هفت ساعت پیاده روی عمدتا زیر باران با خستگی شدید به قله پیسکارواتش رسیدم بالاتر از ابرهایی که در راههای انگادین را در پایین آراسته بودند در کوله پشتی هم یک بطری آب یک ساندویچ و پاکتی با نشان هتل ادلوایس سیلز ماریا داشتم که همان روز صبح جمله‌ای از فیلسوف کوهستان را روی آن نوشته بودم به این نیت که آن را در هنگام رویارویی با ایتالیا و در ارتفاع سه هزار و متری برای بادها و سخره ها بخانم نیچه مثل پدر کشیش خود به تسلی بخشی متحد بود مثل پدرش میخواست به ما راه های کسب رضایت خاطر را نشان دهد ولی برخلاف کشیش یعنی دندان پزشک هایی که دندان مبتلا به درد را میکشند و هایی که گیاهان دارای ریشه های زشت راز را بین می برند، سختیها را پیش نیاز ضروری رضایت خاطر می مرد. و بنابراین میدانست دانست که تسلی های و ساختگی در نهایت بیش از آن که سودمند باشد ظالمانه است. بزرگترین بیماری بشر از رهگذر مبارزه با بیماری هایش پدیدم. و داروهای به ظاهر شفا به مرور را و تر از آنی کردند که قرار بود از میان برود. آدمی به دلیل ناآشنایی داروهای مستیآور آور فوری یا به اسطلاح آرام بخش های آنچنانی را به جای نیروهای براستی شفا دریافت کرد. حتی به این هم هموقعی ننهاد که این تسکین ها و تسهیل های فوری بیشتر به بهای وخیمتر شدن جرف و فراگیر درد دست میداد. نه هر چیزی که سبب می‌شود احساس بهتری پیدا کنیم خوب است و نه هر چیزی که ما را می‌آزارد بد است. به طور کلی، در نظر گرفتن حالت‌های پریشانی و اندوه به مثابه نقیصه، به مثابه حالتی که باید محو شود. هماقته به تمام معنا و به مفهومی عام فاجعه‌ای واقعی به لحاظ پیامدهایش است. حماقتی است مرگبار. تقریبا به همان اندازه احمقانه است که اراده کنیم آب و هوای بد را از میان بر.